تراب و ایشنهان چیست کار بی بنیاد زدیم بر سفرندان و هرچه باد آباد گره ز دل بگوشا و سپه مکن که فکر هیچ مهندس چونین گره نگوشا ز به زمان عجب مدا که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یا قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباب چه آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند چه باقفه است که چون رفت تخت جم برباد ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم که لاله می از خون دیده فرهاد مگر که لاله بدانست بی وفای ده کتاب بزاد و به شد جام میز کف ننهاد بیا بیا که زمانی زمه خراب شویم مگر رسیم به گنجی در این خرابابا نمیدهند دهند اجازت مرا به سیر سفر نسیم باد مسلا و آب رکناباد قده مگیر چه حافظ مگر بناله چنگ که بستند بر ابریشم ترب دلشار